قبل از بود در وحث خودیت و شبه هست و سوگی متعرض کلمات آیان احباری شدیم راجب دیدگاه و نظری که راجب روجه هست و کلمات احباری ها در احباری هست بیشتر ناظر شرف حدیه خارجی هست ناظر نه اون نحظه اصولی که بیشتر جنبه وزیح حقیقیه دارد از کنه این که اون وقت متعرض کلمات اینها شدیم که به اصطلاح وشی و ذکر شدن برای خود جیه این روایاتی که در اختیار ما هست قبل از اینکه بقیه عبارت بخونیم این عبارت محبوم صدوق رو متعرض شدیم که ایشون فرامیدند که کتاب من کتاب فتوایی است مصنفات نیست که از ایشون معلوم میشه که مصنفات قطعی بودن که در اونها احادیث ضعیف و صحیح هر دو صحیح و صحیح هر دو بودند شد که این مطلب خب سال حوالی 1300 تا 1310 توجیح بکنم و توضیحاتشون درست هستند اما اینم کلا در این نکته ایست که برای اون دیروز ارز بکنیم آن را ارز نشد این روز ارز بکنیم با که حالا با قطع نظر از اون توپی حسار و بسائه مراد مرگ و مصطبور و این مجلب که مصنفات ها درش همه یه باقیات بود از کردم در مرگ تثابت کردن مراد کن تحنه به کتاب کافی است درکه نه کافی جزو مصنفات بیمعنا نیست شرط باقی در تلال کافی روایات زدیر هم عورده اما روایات زدیر رو جدا کرده با آنها بابا نواده و در بعضی از جاها در متن خود کتاب روایات معارض هم داره نه در همه جا در بعضی ها داره چون مبنای مربون شکل کدنی تکثیره شاید در اونجا قاعد تکثیر بوده حالا یه موجود تاروز در کتاب کلیمی ناشی از این نیست که بگیم کلیمی مثلا اشتباه کرده یا حواسش نبیم اگر تعارض انسان به باب نوادر رو این هست اما ظاهرا به باب نواده رو قبول نداشته اگر تعارض در متن باب در یک باب بابه احتمالا ایشون قبول داشته و وارد داشته و بوده از اینجا باید نکته مهمتر که این که ما متاسفانه در حدیقا این قبل از کلیمی یا تردیر قبل صدو بوده این مصنفات در نصف و احادیث متعارض چه فرمودن؟ این هنوز برای ما روشن نیست یکی از نقاط ما مثلا قسمیم کتاب و صلات مرمون کتاب و صلات از مصنفات خب روایات سراس و داده افکاری افراد معارض توش باشه من الان نتونم به نسبت این کلام این که اینا چه کار با روایات امتعارض چه مرمه این برمانوز روشن مشکل که کار نوانده و حکمه هست مان محمد ابن احمد ابن بسیار بزرگی بوده در زمان خودش در خور خیلی جا افتاده بوده این بسیار بلا حاضر صحت و صحت و صحت درجه هست و ست. اما شهرت کتاب زیاده کتاب نواز رو فکره. خب در این کتاب ظاهرا به باره متعارض بوده اما حالا ایشون چکار میکرده می کرده اون رو نمی این مشکلی که ما ارمان داریم مثلا واضح که در کتاب رحمه سعده دردالله تارز بوده اما ایشون چکار میکرده ما نمی آیا قاعده به تخیر بوده آیا قاعده به جمع بوده مثل مرگو یه احتمالی به ذهن از در حد حدثه یه نه یعنی اینجورا چون شوافظش از آن خیلی کم و لعیفه احتمالاً ادهی از اینها مثل مروشه قارب جمع بگر از جمعه مهمه هم کن احتمالش خویه بعید شیخ اون که با نماره وجود جمع یعنی حدث ما منشهش اینه شیخ وجود با جمع جمعه برده بدر. بعید ابداع خودش باشه احتمالا سابقه علمی داره خوب درقه بکنه و این به شهر به معارض به این بجوعی که الان در کتاب تهزی و استفساره احتمالی که من میدم خیلی احتمالا قلیه عرض کردم همون در حد احتمال ما یه نقاطی رو باز می کنیم که آنوی شاید بکنم جدیدی در کتاب نواده نکمه واضحه که در کتاب آقادس متعارض هر کنان شمیش نیست این شما در به مناسبه. لازم اینا چه کار میکردن با روابطی مثلا کولینی الان واضحه روابط متعارض داره اما تقریبا مسلطین به کار کولینی روابط معارضه تو باب نواظره امور اشکال داره تو یه متن با هم احتمالاً مسلک تفریق رو قابل باشه ما در مسائل کتاب توضیح دادیم یه مسئله به اصطلاح از قدیم بوده طرز بوده مسئله یوسف و عبدالرحمن مسلح تخییر که مرگوم کلینی قارب بودن تقریبن بودا تحریقش از بست تاوز و مسلح جمع که مرگوم شیخ قارب بودن این ستا مسلح حساسی که بین اصحاب ما بوده بعد ها از قرن نوم و مدنون برن مسلح ترجیح یا آشارش می آن ترجیح بین اصحاب ما دیر آمده بین اهل سندن خیلی زود آمده به اعتبار ما قول جت عبدیه خرار بودن خیلی زود مساله ترجیح آمده یعنی سردیجه ها تو مختلف نه مسئله مسئله که شیرکیه مراجعه ها متعارد متعدده علاقه که رو از روکه اینو که مثلا در تفاق رحمه سرد نبدالله این چطوری بوده چه دیدگاهی داشته اونوانه که کتاب کتاب و رحمه ایشان این بوده تأخیر باشه یعنی اگر ربالات معارضان باشه همه رو قبول بکنیم اختراب اونم ر آیا دیدگاهی ایشان واقعای این بوده؟ متاسفانه همین روز برمانی قسمت رو کنید بله در اصول خیلی برید اگرم تا بوده خیلی اشتباهی اشتبایی مثلا به نسخه برگرده چون حدیث نرد یا پس این امار ابن موسای ساباتی یا پس این معاویت اگر حدیث معارض از امار شیده خب ترک میکنه که آشما برلاشتی به هر اینجور ترمدید. این کتاب و صراط حریف ممکنه این نحو تعارضی معنای پیدا بشه چون حریف مستقیماً از امام ننویسه، اشیعه ایمون باشه. این ممکنه. اما اون که از امام ننویسه، مسئله کتاب الحج معایته ما، از میکنم می‌گویند آیین تعجب ما از بحث و خبر و خارجش، داریم خسالات مظهر رو اون ویژگی‌هایی که ما در پدید به خودمون داریم، نه خب در اونها تا آرز نداره در نصد کتاب و معامل اما کتاب بل حج حسین سعید توش تا آرز داره شون از دیگر هم گرفته احادث مون تا ما یه مشکلی که الان داریم متاسفانه واقعا حل شما خیلی مشکل چون اصلی رسی اولی از به این برای ما واضح نیست که اینها در مقام جمله بین روايات مطال ای عبارت صدوق ظاهر چیزی که در مصنفات همه رو می اورده این عبارت صدوق عبارت صدوق این است که در مصنفات روايات معارض به رو هم می آوردن اما حالا خب هر ما چی چیزی که بالاول معارض چیکار بکنیم صدوق اینبار چیزی نداره من احتمال ارشد من شهرت شما میگه بعید چون قبل از شیخ توسی همین صاحبی که داب دعایم از ایشون اسمایی مسلکه از هرش اسمایی یکی شمون بقوله ایرانی ها ایشون غیر از دعایم دعایم کتاب روسته تقییره یعنی اون که بهش فقت بازده دو سه موردگرات داره که ترک میکنه صدور هم لفت بفرمه مجموعا در صدور شد بعد از انگوشت های دو سه دست نشه شدم پنشیش مورد میگه بلا احمد علی حاضر روی بلا احمد و حاضر میگه اسم بره که بگیم روال احمد خیلی کم موادش دستادو خیلی کم که تصریح کرده و مواردی هم با انها نوازی رو در اواختر نفاق یا تلا بکنن نصبتا کمه موارد نوازی روش کتاب کافی خیلی کم اما دان دانمون استان مثل صدوقه روایاتی ارده که به مطبا داده قبول داد در کتاب ایتالیایی است که صاحب چاپ شده که صاحب توضیح نمام علیزیه که متأثرطانی رساله ناقصه این در روابط طالاسوسروت نوتالسه هنوز این اولین بار چاپ شده حالا چاپ نسخه در دنیا فعلا از یک نسخه واحده بیشتره نسخه شده. که از که چاپ شده ما ذکر این مستشرق ناروانیز که در مذهب اسماعیل کار چاپ شده 2 بار فیلا بردن لبن شاپ با حواشی این کتاب علیه ایشان بسیار بسیار نافعه البته قبل از چاپ هم یه نسخه ای از همین نسخه فتوکپی کردن در شاپانه مشهد بوده مردم آی نمازی در این مصددت سفیرات البحار یا این کتاب چیز مذرد مطابق مصرد. مصددتات علم رجال حدیث ازش نهارو میکنه قبل از شاپیشون نهارو اونم نسخه ای از همین نسخه هست. این نسخه دیگه ما الان نداره این نسخه مونه هسته به فرد بوده و مرهان چاپ شده این نسخه هم مثلا کتوکوبی در مشهد در ای سوخان اون کتاب علی ایزا که واقعا کتاب مجدی هم هست فوق الارد مسادر علمیه ما در اون زمان قابل ارزش داره فوق العاده ارزش داره باید این که از ک یکی از نکاتی که در میتابلی گیزار هست از گیزار ارز کردید به لحاظت زمانی بین مرموم کولینی و صدوقه کولینی 329 وفاتش حدود مشهور 28شن گفته شده احتمال داره چیز دیگه باشه من چند بار ارز کردم خیلی مشهوره بین 28ش و 29 و احتمال داره هیچ کدام 24 باشه اصلا هیچ کدوم نباشه چون ارز کردن در تاریخ مرموم کنیشن وفاتش سال تناسیب نجومه تناسل النجون میکنی در بارش شده 324ه 324ه 329ه لطفا انا در, در, در تفاقه ما اینجه آمده این دوتا با هم نمیخورن یعنی 28شو 29 با تناسل النجون نمیمورن ویستا بزا... بارش شاهاسنگ ها وارش شاهاسنگ ها بارش شاهاسنگ ها در بارش شاهاسنگ 324ه تاریخ نوشن لطفا این در ایکی از مشکلات mils تاریخ هم میدید دو در در با هم از اون هم نویشن کلیو یا 21 شو 20 هم, هم اتفاق دارن این شد تیزی نهشن یا 21 شو 20 نو نویشن مشکولم 29 لیکن سنت تناس نجوم این باز با سنت تناس رو نمیخوره اشار پن سال با اون سال تفاوت داره حالا برما و مرموم صدو قایم 341 در قم که خیلی معروفه صاحب دانی 361 کسی در در مصر پس این مابریاه آماست تقریبا چی 100 سال تمام قبل از روسی شهر روسی شاست ش Ausw Αی شاست ش پس در این کتاب این کتاب ایزا نماسه ای مهمی که مدر شد آفه ایزا بیدیم. کیفیت مثل استفسار شخطوزیه از عجایب این کتاب این کسی این کتاب که کرده این نکتر فندیر نداشته از عجایب این کتاب ایزا مثل استفسار شخطوزیه رو حات ما آرز با عباده. و سن کرده به همون مسلک قاضی توسی قادیه همه همکم این که از کنم به شما شواهد نشون میده به ذهن ما فیلن این جور آنزد. بقید شیخ توسی این وجوه رو خودش ادعا کرده باشه احتمالاً صادقه داره. احتمالاً مثلا ما اح... الان خود من احتمال بسیار بسیار قریب میده که در کتاب نوازال حکم این مسلک جمع داره و از این تارست رو اینجور کرد احتمالا میگم شواهد ما خیلی کمه خیلی این احتمالات من این موارد رو خوام بگم شواهدش رو متن برکنم و توضیح بدم طول می‌کشه لكن آرزو می‌کنم که اولین فیما بعد ما الان دقیقا نمی‌دونیم حسین فعی باروس ماارد چه کرده این که نمی‌می‌بینید چون رسما کتابی از ایشان نداریم البته بعضی کتاب های مخصوص هست احتمالا مال ایشون باشه که خیلی شعر داره من فعلا به گزار کار، تذکر کردن رفا تنفار مومنی و اما تحلیل و تحلیل و بیان مصادی باز بیشتر تونی بکشید این راکه به این مطلبی که مرموم شیخ صدوق رو بودن بعد بر مرموم های چیز ثابت کردن که عبارت کلینی رو اوزن و عبارت کلینی توضیحی دادن که از عبارت کلینی معلوم شد که اینها همه قطعی هستن هست که رووارد قطعی نیستن اینشون که قول من نهخوازی که کل ها ثابت هستند ثابت من هوی از این ما توضیحات رو در بحث فی اصولی چرا هم دیدیم ما دو مسئله کلی را که حدیث داریم کلی بهطور کلی حدیث، ففا کتب اصلا تو یک مسئله واقع داریم یک مسئله با جگرایی ذرافران ما به شواهد تاریخی بنده که اثبات واقعیت بکنیم این همون راهی است که الان مستشرحین راجبه مثلا متون حدیث ما یا قرآن پیش می یه این مسئله در نظف... و عقلی های اصحاب هم که اهل سنت چه شیعه بیشتر دنبال این مسئله بودن یه مسئله که است هم ما به دنبال واقعیت چون دست واقعا کوتاهه به دنبال حجت باشیم نه به دنبال واقع. حجتی از یعنی اتجاهی با. نه خود اتجاه جبرال من نه اتجاهی نه واقع اتجاه واقعی ذریعه ما اتجاهمو رو اتجاه حجت نه اینکه میگفه آقای من نه از این سه‌ها کلها سوابدلشون این سوابدلشون لحظه مجمعیه یعنی سوابدلشون غنوان واقع این مشکله فریب میشی سوابدلشون غنوان و حجت‌داره ما عرض کردیم کتاب کافی شیخ صاحب ایشون به استثنای نوادر و به استثنای روزه البته دقیق کنید بحث نوادر فقط تو حروف نیست تو اصول هم نوادر داره اینطور نیست که اصلاً نوادر فقط تو حروف باشه تو اصول هم داره به استثنای نوادر و به استثنای روزه ظاهرا احادیث که شیشه معجزه ظاهرا مرحوم شیخ صدوق هم به استثنای چهار پنج مورد که تصریح میکنه عمل بره وارد نیم کنم و به استثنان مواردی که نبوده در اواخر بعضی از کتاب و قده ظاهرن کلی کتاب پیش ایشان حجته نه ثابت معنی واقع ثابت معنی حجه این راسته این مدل اگه ایشون بخوان بفرمان راست بعد ایشون فرمان و قادر شیخی کتاب قده و فل استفسار کلامن طبیل هست. اینجا بیشتر از کتاب قده است. نه استفابه استفساد و منونو شیخ پسیم بندی کرده چون ما بحث حجر خبر واسه کلمات شیخ رو جداگانه می و معتقدم که ایشون بله یک به مشکل داره لذا الان وارد اون بحث عبارت ایشان نمیشیم شیم چون عبارت شیخ باید جداگانه کنیم بله بحث من هم صاحب و کسی رمای اولوف تحضیم اخبار التي عدد تحضیل ها بلا و ها ها اخبار الاهات التي لا زفید و و از که درسته و از که این کل حدیث و این نیست خیلی از احادیث و ایشون در در و کتاب نهایی رو شخص این که هستی ما هست دیگه ردم نکند اما اینکه شیخ در خیلی از جاها میگه آلا من اخبار الاحاد الله راست این درست این مطلب درست و این مطلب همون است که ما چرا راه که مسئله شیخ واضحه نیست داریم به ذهن میاد که منظور شیخ سعی کرده البته من بعد توضیح میدم در جرد بین السلام شیخ واسعیه شیخ سری کردن یک جولی بین مسلح قوم و بغدار جمع با من که هم میدم اینه چطور میانی شیخ به این روح جمع تبراری میکنه به نظر من شیخ سی مسلح و از مسلح حصولی جمع تبراری کردن سری کردن مسلح بغدار رو با مست. این اینه که اخبار رو آداز رو بیده اینه عبارت بغداری هاست اون خب این رو بکار میو هست تا این گونهش دین مسئله قوم و بندر یه نغری مصالحه ایجاد کنه مثلا سر یه دیفه نغریه به شیخ طائفه ایش همین بود دیگه حالا مثلا سر مصطفا قمی شام بود استاد شیخ مفتی که مرجع بزرگ واسه احتمالاً چون اون دوتا تا تند بودن با برد. با قمی ها شیخ ما بین قوم و اهداظ رو جمع کنه قمی ها هم به شیخ اعتماد کرده شدن. احتمالاً ایش یه طارفه و البته این اندازه علمی درمی‌می‌سازه که قولمون جه ما بحث سیاسی شاد pad nakunem. علمی جمع بین دو مکتب مختلف در شناخت حدیثی انصافاً به نتیجه واضحه می‌رسه. این هست آچه. اما از این اباظ چیزی نمی‌شه فهمید. خب ایشون اخبار و چون ساده‌ها مورد قرار واردش بشمار کردن. شاید مورد، اون مورد باشه از اخبار و دو مورد دوسته ما در تحضیح بگن اول ما فیاضا سبر مرسان سو شاید ده ها مورد مرسل نریومه هنوز برای ما احتمال بیدیم که بعضی کلمات را شیخ از باب تحکیده و بر حجیبیت بر و اثباته بطلا ای چی شبیه بحث جللی مثلا میگه این رو باید بوده عمل سردش هم صحیح بوده ما این روز ما عمل نیم کنیم چه اضافه این کردن ما به خبر هم اضافه میکنم تحکیل روی مبانی نه این که واقعا مقناه علمی شیخی باشه احتمال نداره برای دورای مختلف باشه یه موقع نوشتم؟ خلاف خلاف این 11 سال 10 سال 11 سالی که نجب بودن خواهی علمی نکردن اگر کرده شاید بهتر دردن من از سرمشون 408 بارد بردار شد 409 آخر شد, شد. از بردار خواهد شد تمام آثار علمیش اقمال این زمان به استثناءی دو کتابی که عمالی اون ارزش ایبینه میشه حدیث رو میره یکی کتاب کشی کتاب کشی موجود ایشون تو کرده. این کتاب که چه خیلی غلط داره این طبعا به حدیث سازانه که چه باعث که کتاب میشه غلط فروض های داره یک نواس هم نظر جاش این درست میشه وقتی شهرت اگر اگر واقعا حالا آره شما نمی روشت نصف اصلی رو غلط فرضش میشه شما نصف اصلی نمی تونید نصف اصلی نمیدیم الان نمیتونیم چیزی رو پیش بینی بکنیم این نوصه موضوعه که خیلی غلط فروض داره علایق اهماط بری به شیفی که این همه آثار علمی درست کرده کمتی کتابی رو تکییس بکنه به این صورت خیلی عجیبه عجیبگه یعنی. م کار اول شیخه احتمال بود نه کار آکارچه دستاییی دیدن نظر بودنشون این کتاب رو به این صورت در بیارن این کتاب موجود که خیلی برورود داره فوق الات زیاده. ال یاانه بعد از عباراتی که ایشون دارن موم بله من چون ورزش حار خاصی داره میکنن عباتی است که موم شخ آم بها... شیخ بهایی با قول ما ایشون اسمشی محمد و بهایی چون بها ادین بشمیگفت کنیش بها بوده در بین زبان فاسی بهایی. بهایی بهایی ما رفتی نداره کنید و مرحوم هم شیخ بها ادین یا معقل در پیشیران به بهایی ایشون در کتاب در مشروع شمسی مرحوم هم شیخ بهایی اضافه و جهات متعددی که خودش زوفنون بود و مرد روشنی انصافن که از کسانی سرکر با یه دیر واسعی، با یه دیر بازی با یه افاق جدیدی وارد بحث هایی دینی ما باشه چیزا نفر از بزرگان در این مرحله با افاق بازی وارد شدن با یه افاق فکری و عقلانی که مهموم دامانی که خود پرام شهر است، و انصافن اینایی که مهموم مقدس عزبیلی تا حد ز انصافن هم اینها افرق جدیدی رو باز کردن البته خب میدونید چون این افرق زمان و باز شد و علاقل کار بود کاری نخواهی با یه مشکلاتی رو بود که مرموم شیخ باید نمیستن در شرحالشون سی سال سیاهت می کرده شاید علت این که ما الان آثار علمی عشق یعنی این مقدار موجودش اینشون می ده اعظمت علمیشونه اما توقع و واقعا با تصور این می شد که مرموم باید پیش از این در حوزه معارف دینی آثار علمی داشته باشه احتمالا این سی سال که ایشان از این شهر بودت رو میگم با دباس در آویش رو صوفیه بوده در این مدت زالن این مانع شده که آثار علمی لازم ها شهر تر شهر نکنه تر آویش نکنه بله این بزرگ و میگم یکی از نکات مهم این زمان صفویه باز شدن و خواه جدیه هم و مثلا بیان هم مراجعه به ادعای اجماع این اجماع درسته درست نیست مقدار زیادش مرحوم مقدس اردبیری قدس الله نفسه شاگرد ایشون مثلا صاحب مدارک و ما بیشتر اصیله خود شیخ بهایی رو انصافا مطالبی هستن که نسبت به خودش در زمان خودش در قرن دهم ده تنوسن افق جدیدی رو در معارف و دعویه شیعه باز بکنن ولی شیخ بایی در زمان مشوق بعد از این تقسیم عربعه نوشته به ها در اسطلاح لم یکن معروف هم دین آن راسته این درسته کما با ظاهران لمن ما کلام هم ببین این مناقشات و اینکه این کی شروع شد اینا کاره بودی که در قرن دهم هم این انجام بله متعارب و بین هم اطلاع و صحیح الان معتزده به ما یختزی اعتماد هم علیک صحیح که همراه باشه این صحیح معتبر قبول اول یکترنه به ما یونی بولوسوق به و رکون الی این اسمشو اوشان صحیح قدما این دقت کردیم این عبارت صحیح و و دقت بکنیم فقط مرمون شهر بهایی توضیحات کافی بین نمیشیم در اطلاق صحیح اینطور طور نبود که فقط بیان مثلا سند در بگیرن. از کلم بعد از علامه در وحشهای شناخت حدیث سند رو مدارزه کرد. اما اینا آمدن هم سند رو نگاه کردن تا یک خیلی تأکید داشتن اون شیخی که از شلقی حدیث کنن این خیلی دوشون مونه یعنی اعتماد بر یک شخصی که به به عنوان شیخ و خط حدیث و استاد حدیث معروف شده این خیلی مونه بود یه یعنی عبارتی مرحوم نجاشی داره آنجور دوگه مرحوم نجاشی همه مثلا اینجوری بود که اگر یک حدیثی بود. یا مثلا یک کسی حدیثی ضریف بود نقل نمی شده. اما اگر یک استاد و یک خبره اونو نقل میکرد اعتماد میکنم الان روی یک مقامی هر آنه کلان رجالی های مدنم فرم نمیکنه. کنم مقام نجاشی در شرح حال عبول یا شرح حال نجاشی که هر دو استادش میگه تمه افتمن هشعر کسی رو دار که میرهید و از خواب نجالعفونه و تجنب تو روایت هم من از این نقل نمی کنم الا به واسط بینی و بین عبوده. خیلی که ایچی کنم شیبانی هستیم میگه الا به واسط از این این واسط مراد شیخه شیخ حدیث به خود کلمات ابو مفضل اعتماد نمی کنم مگر ایکی از بزرگان از اون را را بکنه اون میخواد این بقیقتر میگم شواردی که هست مشارق حدیث هست خود اصول اصحاب هست مسنفات اصحاب یکی هم خود مزمون خبر هست خود مزمون خبر خود مزمون خبر هم حساب میشه کن پس مجموعه شواهد شواهد متحددی بود که از جهات بود نمی خود مزمون خبر که می این مزمون خبر میخوره که از امام باشه یا رسول الله باشه بعد ایشون روی باید به امور حالا این چون میگم یک مقدار حسائص حدیث شیعه هست این عبارات رو می‌خونه از باب دهم از باب هشتم علامه منابشه شروع کرد از باب دهم منابشه در کلمات علامه شروع شد خوب دقت بکنه وقتی شروع مرحوم شیحه بهایی میگه که شواهدی موجود بوده که قدم‌ها رو این شواهد عمل کرده وقتی شواهد رو شما خیلی می‌گه شواهد شواهد شواهد, شواهد. مرحوم شیحه بهایی دستبندی کرد یک وجود رو منها وجود اون فی كثير من الار اصول ال حلتی نقلوها عن مشايخهم به طرقه هم و متصله به اصحابه اسمه اصول البرمنه رو که با اتصال سنبوتیم اصول البرمنه همه شه اتصال سنبوت نداره شون و کانت متدابله في تلك احصار مشتهره دن بینم هم شمس خیلی رائعت نهار یا خیلی رابعت نهار چون دو زمس شده کلم یون بحث نجومی در خودشون کشته هار شمس فی رابعت نهار یا رابعت نهار از کلمش موقعی یکی یکی بخونیم اولا خیلی از این حصول این که کنگوه آسانید متصله نه آسانید متصله محتصله برد. و اینکه این مشهور شهرت شمس خیلی یعنی برای ما تحجیبا برک اینمال اینه که میگن می زمان شیخ باهی تازه شروع شده بود بعدها آمدن باز این کلمات رو نقاضی کردن بررسی کردن چطور میشه این اصول اربعه مشهور باشه شهار شمس بیرابرد اندها و مرموم نجاشی از کل اصول 6 تا یا هفتا نهار کرده در کل فهرس نجاشی کل اون چیزی که به عنوان اصل از اصحاب نهار کرده شیش تا سیا هفتا اما ایش کنوشه اصول اربعه من اینکر داشت شعارت باشه نجاشی که خبریت صناعته و استاد این فنه شیخ احمد هم چه چی نوشته که 70 تا 600 توی عبارت یکی کل اون چیزی که 70 تا بنویسه خدایشان و 50 تا دیگه گفته اصلا شیخ نگفته مثلا تابعا بیشتر اون بره حدود 70 مورد اما چطور میشه این اصول اینقدر شهرت داشته و النها نگیشه شده عمل کنه شهر این چه اشتهاری این چی اصلا میگم این کلمه اصول راهنما مشهور شد مشهور شد یه خود اینها مراضیه نکردن از کتاب مرحوم آیه آموز رحمت الله علی در کتاب از دریده جلد دو راه که کلمه اصل میشون دیگه تمام اون مواردی که نجاشی و شهر خودی گرام تصریح و اثرب کردن هم کل شاره دو وارد و ضعیف و همه رو با هم یه صحیح و سقیم با هم جمع کردن تازه جز موارد اصل است مثلا شیخ هم اصل نیست مشاجری توسعه از من تمام این حاله که با اندی دیگه جمع کرده 17 دار و چهده شدهصد ۱ ده در از ذریعه مجموعه خصی رو که ایشان چند کرده ا ولان و فولان و فلان ها تازه شدهصد ۱ ده است دق میکنه که سال چهارصد تا خیلی راه داره. چطور این ما اشکال اون اینه؟ یک مطالبی یک دفعه به این حتی بگیم عوام مشهور میشه وقت متاسفانه به از فرین اولین کسی که یعنی که لفظ به کار بازه مرموم امن شهراشوب در معالمه قبل در از ایشون ما نرزم اصول عرب اصلا نداریم کلا اونم قرم پنجم ششم تازه شهر شهراشوب از شیخ مفید درم میکنه که در هیچ یک از آثار شیخ مفید که به ما رسیده موج شیخ مفید فیت تازه اونم که نام از عهد احمد از زمان عسکریه انصافا ما تغییر در مسند زمان ما امکانات نداریم. اما ما خودی را نداریم خود میذاریم که از خود احمد دعمیر المؤمنین نداریم. پیش از قضا زمان احکام ما از احمد دعمیر میبینیم اصل نداریم. از امام حسن نداریم. چطور یعنی ما اصلا نمیدونیم این عبارتي رو که مرهوم عبن شهراشوب نقل کرده چون همراه کلمه اربمعی اضافه شده اونا هم الان ما معناش نمیدونیم اصلا تصور نمیکنیم که این یعنی یعنی چ عبارت از شیخ مفید نقل در عبارت شیخ مفید نیست حالا یشون اشتباه کردن کسی یه بوده جای دیگه بوده مثلا مفید ثانی بوده مفید ثانی در اصطلاح تراجم ما شیعه مراد پسر شیخ توسی ابوعلی پسر شهر توسی حسن ابن محمد ابن حسن شهر توسی اسمه سمارشن محمد ابن پدرشان حسن پسرشان حسن گذاشتن اینشو معروف است به ابو علی ثانی ابو علی مفید ثانی مفید ثانی در از درانی ما با ما مفید داریم دو جبار رازی در اما مفید در اونزان تقریبا ملاده به کلمه پروفسور در زبان ما یعنی که زی که نظر در درجه بالاست مفید تقریب میکنه. اهلستانت هم دارم ما کلمه مفید شاید مرادش پسر شیخ توسی بوده برم در اعبارات شیخ مفید که ما فعلا نداریم پس روشن شد من یکی از ارکان اعتماد مرمومون لا محمدنی شده خیلی در کتاب فواز المدنی همهش اصول اربعه اصول اربعه اینا ها مشکل از این شش 7 هایی که نگرشی اصلا بعضی اصلا مشکل هم نیستن اصلا کلا مشکل نیست خود اون شخص مشبور نیست جزوی روات معروف ما نیست ازا که اینکه ماکان این مطلبی رو که ایشون فرمیدن وجود و حفی کسی رو میدن اصول عربه مشکل خود سر کلمه اصول عربه همه کسی رو هم میدشت بکنیم کسی <تص> اصول عربه همه چیه از کردم احتمال احتمال حد احتمال ان شاید نجاشی گفته فلان بن اسحال بره و ان بیادر لو کتابه در وجوده اصله شاید مثلا هر چیزی که این جزء اسحا به الله بن حسن ابن حسن رضا آوردن این کتاب رو نه اصل احتمال هست حد احتمال احتمال هست خب این ارزش علمی کتابی چی کشول در تازه چارک شده چارک نشده یه سالیه سی سالی چارک ما مرموهای خونسالی خدا رحمتش ایشون به نظر از عربرمه کرده هر کسی که خطاب اون کتاب بیشه اصل و خلاه بله در این کتاب که حدود خورده ای سال و خرده سال قبل نوشته شده ایشون اصولی از عربرمه رد کرده نظر جلده ارگرش و دومش اصل کلاه، اصل اصل و و همه انامین مندربردی ایشان جایی جنیزی در ایش کتابی تعدیری اصله شده ظاهرا ایشان مثلا هر چی بوده مثلا فلان ربو کتابا نوشه اصلون، اصل فلان خیلی اصول رو زیاد کردن از چهار تا همیشون رد فرمودن ظاهرن نشمونده هم رد کرده بشت و منها تکرر رو هفی اصل او اصلین منها فسائدن به طرق مختلفه و اصانی در عدیدت معتبره دیگه این چون عصب بر ما سبب حال اینکه باشن شد و من منها وجود فی اصل معروف الانتصاب الى احد الجماعه الذین اجمع و علا تصدیق هم که و محمد ابن مسلم و خوزهیل ابن یحسا وجود در بله اینکه تلفیقی کردن بین کلمه اصل و بین اصحاب اجماع اصحاب اجماع به این معنا در نوشت نخست نوشتاری که ما داریم در کتاب کشی احتمال داره احتمال داره اصلش هم عیاشی باشه دیگه چون وقت اینجا مساعد نیست من در گردی توضیح میدن که اصل این تغییر هم از عیاشی باشه معروف هم بحث ها به و کلمه اصول رو با این تخصیب تلفیه کردن شده اگر اصلی باشه که بینام با تصادف هم از تصادف این سه نفری که ایشون از اصحاب اجماع اسم وره هیچ کسی اینا عرض نسبت نداده نه, نه به زرار. <تصفح> نه به محرمه ببین مسلم. اولا ما کراه عرض کردیم. زرار بعضی از شواهد زیادم هم یک حدیثه. نشون میده که ایشون خدبت ما و سالات با خودشون الوا اوراغ داشتن می نوشن حدیث. یک حدیث هست. بیش هزم در کل درواق زرار من نگیدم. حالا اگر اون یک حدیث رو شاهد برای کل داره و از زراره بگیریم حالا فرض اینجوری فرض این که زراره مینوشته خوب دقت بکنید این نقطه است که چون من دارم الان در تاریخ حدیث شیعه صحبت میکنم ببینید وقتی که آمد زراره از مدینه به کوفه دقت بکنید این نوشتارش اجازه ندازه دقت میکن چی ما بگن؟ مثلا خدمت امام نوشته آمده کورفه پس که ما چند تا شاگز محروف داره یکی پسر داردرش عبدالله مبوکه یکی که از اینه است. یکی پسر جمیله به یکی پسر حریزه نرده این شاگز هایی خیلی جوان و با داره زراره زراره به اینها این کتاب و نوشته رو نرده خود دقت میکنیم چی ممکن هم از رو خونده باشه نوشتار خودش بونه نرده ممکنه نوشت لذا الان شما وقتی کتاب فهرست نجاشی یا فهرست شهر مراجعه میکنید برای زراره کتابی در فقه ننوشتن در صلاح ننوشتن با این کتاب حریز در صلاح مقدار زیادی از زراره است این معناش چیه؟ این معناش اینه که زراره نوشتار خودش اجازه نداده. چون اصحار ما اینجوری بودن رفتن خدمت ایمانفرس که معایت مهمه حج رو از امام نوشته آمده کوفه یا بغداد یا کوفه پس اون به نبی عمر یا به این کتاب رو اجازه داده اونی که نوشته. اون به بعدی اجازه داده این اجازات چند شده شده کتاب رو شده فهرست شیخ نهره تاریخ فهرست اینجوری بوده اما خود زراره کتاب خودش رو از که ما شواهد زیاد نه در شرحال زراره داریم نه در روایات ایشان که همه روایات رو نوشته باشید یه روایات در مور صلات و اوقات و که امام فرمدان وقت نماز ظهر از این طور فرفتح علواه همون یک از اینه زراره علواهش رو و رفاش باز کرد که بنویسه حضرت امام ننویس این نشون میده حالا این یا بلند هدیه است، اما خب 2000 حدیث زور آLESSش. حالا این یکی رو شاهد می‌کنیم برای دو هزار، از آنجا هم قبول نمی‌شید، حدیث شد برای دو هزار قبول نمی‌شوند. میدونم اینجا یک وقتی که آموزش می‌کنیم، چون ما ولی بحثی بکنیم که نظر علمی در سطح علمی جهان مقبول بیفته. قبول نمیکنن که اگر حدیثشونش برای دو هزار استارگر حالا فرض کن قبول تابودن، حالا فرض کن قبول. اما بحثی اینه که می‌دانیم دقت از دقت نجاشی با اینکه احتمال میزن نوشته باشه حتی ممکن نوشار رو هم در یک فر هرریث خونده و اون نوشته چون نوشتش رو اجازه نداده دقت میکنه چقدر از حال ما در بودن چون نوشته رو اجازه نداده تو اجازات ما کتاب ظراره نیماده کتاب جمیل آمده کتاب حریذ آمده کتاب عبداللهم بوکر آمده کتاب عمر شاگردای زراغ آمده مثلا یه نقطه‌ای ای که من چند بار گفتم این خیلی مهمه. اینم از نعم الهی بر شیعه‌ها. ولی میگم واقعاً تحت انایات اهل بیت بود یا خود به خود یکی از خوبی‌های کار فهرستی که نجاشی به شیخ کردنه ما تاریخ انتقال از شفاهی به کتابت رو نمی‌تونی معین بکن. این خیلی مثلا حدیث عمر ابن که اخیران به یک مناسبتی بخشیم با شهرتی که داره این حدیث عمر ابن خود عمر ابن هنزله نجاشی بهش کتاب نسبت نداده. یعنی یا عمر ابن خودش نوشته بوده خونده یا شفاهی بوده اما داود ابن حسین که گفته شده واقفی شاگرد ایشانه او نعبیل میکنه او صاحب کتاب نجاشی به او کتاب نسبت داده شده نسبت داده یعنی با با معلومات سننی این کار رو نمیتون بکنن یعنی شما در اسانید بخاری نمیتون ببینیم تا اینجا شفای بوده از اینجا کتری شده خیلی مهمه این نظر تاریخی یکی از که کردان حدیث شیعه در سطح علمی نظر بالا ما میدونیم حدیث که شفاری بوده که کتری شده مثلا حدیث امرو نهنزل شفاری بوده و لذا اسم امرو نهنزل در اجازات ما نیامده برپرد هم نوشته باشه یعنی از دوی نوشتهش خونده ما ملیار شفایی و کتوی ما آمادنش در اجازات ماست اما شاگرد ایشان کتاب داره زراره کتاب نداره اما شاگرد ایشان به زراره کتابی در استطاعت نسبت داده شده که مسئله کلامی شیخ هم نوشته داره کتاب یا اصول یک هم چی چیزی ابوهاد شیخ نظرم ابوهام داره کامون بله برای بله. فهرست شیخ, شیخ, شیخ در درباره شیخ عبارت عجیبی راج به زار داره که به نظر من غلطی جزو غلطی شیخ نجاشی اون یون کتاب کتابو پلی استفا وارد نجاشی است تازه اون هم نیست کننده ده قصر اما در سه قطعاً به اون نسبت داده نشده بله به محمد مسلم کتاب نشه داده شده کتابش 400 مسئله است شیخ در مسئله از حلال و حرام ان شاء پیش میدید خوزه ایدم به نظرم بهش کتاب نسبت داده شد. اما اصل نیستن اصلشن. اصلشن. نشده. این تعبیر خود مرحوم آقای شیخ بهایی که از اونها تعبیر به اصل کرده اصل کردن ادهی آمدن تلفیق کردند که از اصحاب ما اصل داشتن نه هم که اصحاب رجما هست پس این هم اصل داشتن این کافی نیست این علمی درست نیست بله بله حالا یک عباره که تثمیه هم داره بله هیچ کدومه درست بید نه کتا اصول درسته نه کتابل استطاعت ایشون درسته, درسته. بله اصول بله نه اون برای لحوم گفته برای خاندان که لحوم روایات کسیره و اصول و تطانیر سناسکو و آقی بله آن روایاتونن عزیز 93 محمد, محمد الدری و زخفزو محمد ترکون سیفران و زجار ولی زراره موسم دفاع منهای که خود ستار تو برچه احبر آنها افناحی کهیه چی؟ افناحی کهی هم محمد الدری و زخفزو محمد هم تعالی ستار فرقی هم تعالی ستار فرقی هم تعالی ستار فرقی ببینید اولاً بعضی از صابونا داره ما احتمال لنجه اشتباه مال برقی باشه برقی روایات به اشتباه کتاب کرد نجاشی کتاب استطاعات میگه یون صابوره حالا این سند احترف پیشه داریم میخوام بخونم طولانی شرح طولانی و هر حال ما رو با نجاشی ببین کتاب استطاعات هم صابت میشه از مصنفات که ایشون تعریف ده مصنفات که اصلا خیلی بریده مگر میگه مراد از مصنفات کتاب صلوات الابق اینجوری بوده و احتمالا اشتباه کرده برقی پدر اشتباه کرده و توضیحاتی ما هست که جاش نگه نیست و هر حال این مطالبی که ایشون فهمده در کتابهای ما به زراره اصل نسبت داده نشده این مطلبی که منو شکه باهایی فرمودن این قابل اعتماد نیم رسال الله علیه برقیقه پورایی حفیث خالصیم چون شما باید با حفیثشی یا آشنایی شما باید